از بودنی دوست چه داری تیمار و از فکرت بیهوده دل و جان افگار خورم تو وزی جهان به شادی گذران، تدبیر نبا تو کردند اول کار. این اهل قبور خاک گشتند و قبار، بی خود شده و بی خبرند از همه کار، هر زره ز هر ذره گرفتند کنار، آه این چه سراب است که تا روز شمار. ای دل همه اسباب جهان خواسته گیر، باغ ترابت به سبز آراسته گیر، وانگاه بران سبز شبی چون شبنم نم، بنشسته و بامداد برخواسته گیر. سنت مکن و فریزه حق بگذار، وان لغمکه داریز کسان باز مدار، غیبت مکن و مجوی کس را آزار، هم بعدی آن جهان منم باده بیار.